دوستان به جلسه دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. ضمن بررسی کتاب مقدس به کتاب سرودهای قوم خدا رسیدیم، کتاب مزامیر. این کتاب مورد علاقه بسیاری از مردم هست و شکی نیست که وقتی این کتاب رو با هم بررسی می‌کنیم، شما هم به این کتاب علاقه مند خواهید شد. با هم دیگه به درس امروز معلممون از کلام خدا گوش میکنیم. خداوند را در هر وقت متبارک خواهم گفت تسبیح او دائما بر زبان من خواهد بود جان من در خداوند فخر خواهد کرد مسکینان شنیده شادی خواهند نمود خداوند را با من تکبیر نمایید نام او را با یکدیگر برفرازیم چون خداوند را طلبیدم مرا مستجاب فرمود و مرا از جمیع ترس هایم خلاصی بخشید به سوی او نظر کردند و منور گردیدند و روی های ایشان خجل نشد. این مسکین فریاد کرد و خداوند او را شنید و او را از تمامی تنگیهایش رهایی بخشید. فرشته خداوند گرداگرد ترسندگان او است. اردو زده ایشان را می رهاند. بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. خوشابهال شخصی که به دو توکل می دارد. ای مقدسان خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست. شیربچگان بینوا شده گرسنگی میکشند و اما طالبان خداوند را به هیچ چیز نیکو کمی نخواهد شد. ای اطفال بیایید مرا بشنوید و ترس خداوند را به شما خواهم آموگد. آن شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست می دارد تا نیکویی را ببیند. زبانت را از بدی نگاه دار و لبهایت را از سخنان حیل آمیز؟ از بدی اجتناب نما و نیکویی بکن صلح را طلب نما و در پی آن بکوش چشمان خداوند به سوی سالهان است و گوشهای وی به سوی فریاد ایشان روی خداوند به سوی بدکاران است تا ذکر ایشان را از زمین منقطع سازد چون سالهان فریاد برآوردند خداوند ایشان را شنید و ایشان را از همه تنگیهایشان رهایی بخشید خداوند نزدیک شکست دلان است و روح کوفتگان را نجات خواهد داد. زحمات مرد صالح بسیار است، اما خداوند او را از همه آنها خواهد رهانید. اینها وعده های مزمور سی و چهار هستند. ضمن که می خواهیم بررسی کتاب مزامیر را به پایان برسونیم، می خواهم یک بار دیگه یادآوری کنم که چندین نوع مزمور داریم. مزمور مرد برکتی یافته، مزامیر احساسی و دعایی، مزامیر پرستشی و مزامیر نبوتی گاهی بعضی از مزامیر آمیخته ای از چندین نوع مزمور هست و شما نمیتونید قطعا تایید کنید که این از کدام نوع هست از جمله این مزامیر مزمور سی و هست که قطعاتی از هر نو مزمور کنار هم قرار گرفته این مزمور بر بعضی احساسات مهم تمرکز کرده و به ما نشون میده که چطور از احده این مشکلات احساسی بر بیاییم؟ در مزمور سی شما قدری معزه میبینید و این معزه با پرستش شروع میشه. مزمور سی اهمیت دیدگاه تاریخی رو در موقع تفسیر مزمور به ما توضیح میده. نوشته کوتاهی در ابتدای این مزمور به دین مزمون وجود داره. مزمور داوود وقتی که منش خود را به حضور عبی ملک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده برفت. اگر شما با زندگی نامه داود آشنا باشید میدونید دونید که در اول سمویل باب 21 و 22 داود وقتی که از حضور شاول فرار میکنه در پایین ترین سطح احساسی خود هست. داوود میدونه دونه که شاول قصد کشتن او رو داره و او مجبوره که فرار کنه و پناهنده بشه. این خطر بود که او جانش رو از دست بده. واقعا و عملا مرگ نزدیکش بود. برای زنده ماندن، داوود به فکر عقد قرارداد با شاه فلسطین افتاد که بتونه از خودش محافظت کنه و زنده بمونه داوود وقتی به حضور شاه فلسطین به نام عبی ملک می رفت، از راه روهای بلند و بور می کرد که در دو طرفش سربازان صف کشیده بودند. این روش معمول اون ایام بود داوود میشنید شنید که بعضی از سربازان در مورد او صحبت می کنند اونها می گفتند آیا این همون کسی نیست که در مورد او در اسرائیل می خوندند؟ یادتونه اونها اسرائی شاول هزاران خود و داوود ده هزاران خود را کشته. کشته شدگان سربازان فلسطینی بودند. داوود وقتی صحبتهای سربازان را شنید، متوجه شد که او نخواهد توانست با ابی ملک پیمان ببندد. آشکار بود که او تصمیمش را عوض کرده بود چون وقتی به حضور پادشاه فلسطین رسید، فهمید تنها راهی که میتونه از این وضعیت خلاص بشه، اینه که تظاهر به دیوانگی کنه. داوود باید هنرپیشه ماهری بوده باشه چون ابی ملک قانع شد که او دیوانه هست. داوودا به دهانش رو بر روی ریشش میریخت و خودش رو به زمین میانداخت و انواع کارهای غیر انجام میداد بالاخره شاه فلسطینی گفت اینک این شخص رو میبینید که دیوانه هست. چرا او را نزد من آوردید آیا محتاج به دیوانگان هستم که این شخص را نزد من آوردید تا دیوانگی کند و این شخص داخل خانه من شود پس داوود رو بیرون انداختن و در مقدمه این مزمور به همین مطلب اشاره شده. شما میتونید مشروع کامل این داستان را در اول سمویل 21 بخونید. این یکی از تاریکترین لحظات زندگی داوود بود. مطمئنم که ملاقات او با عبی ملک یکی از خفتبارترین تجربیات او بود. داوود از حضور عبی ملک به بیابان رفت و خود را در غار عدولام مخفی کرد. وقتی داوود در بیابان بود و مانند حیوان در غار مخفی شده بود این کتاب الهام شده میگه که تمامی کسانی که بدهکار بودند اونهایی که در نارضایتی و فشارهای روحی بودند نزد او آمدند به نظر میومد که اکثریت جمعیت بدهکار و در فشار و نارضایتی بودند همه اونها به بیابان آمدند تا همراه داوود باشند در اون ایام اگر شما بدهکار می شدید نارضایتی زیاد و فشار زیادی توی زندگیتون داشتید. چون اگر نمی توانستید از عهده پرداخت بدهیتون بر بیایید، باید به زندان طلبکار کار می رفتید. شما نمیتونستید هیچ درآمدی در زندان داشته باشید. پس کسانی که بدهکار بودند، باید به جایی پناه می بردن. اونها می دونستند که داوود فراری هست، پس در بیابان به داوود ملحق شدند. داوود و پیروان وفادارش که بدهکار بودند و در فشار و نارضایتی بودند، از دیدگاه عموم ورشکسته بودند مزمور 34 خلاصه موعظه داوود است که خطاب به اون فراریان و ورشکستگان موعظه میکنه که بعدها به مردان مقتدر داوود تبدیل شدن بعدها وقتی ابشالوم ترتیب یک شورش رو داد و تمام قوم رو بر علیه داوود برانگیخت این مردان مقتدر او بودند که در مقابل تمام قوم از داوود دفاع کردند داوود صدها مرد قدرتمند داشت اما در تواریخ در مورد سی نفر از اونها نوشته که یکی از اونها مردی به نام بنایا هست که مردی شجا بود و در روزی برفی به ای وارد شده شیری را کشت. تواریخ اینطور به سه نفر به نام های یو و بنایا اشاره کرده که اونها محرم اسرار داوود بودند. این مردان مقتدر داوود درس بزرگی از رهبری هستند. داوود این مردان شجا را کجا ملاقات کرد؟ آیا اونها همیشه مردان مقتدر بودند؟ و اینکه چطور تبدیل به مردان مقتدر شدند؟ مزمور 34 به همه این سوالات جواب میده. مزمور 34 میگه وقتی داوود اونها رو ملاقات میکرد، اونها شکست خورده بودند. در این مزمور آمده که داوود از اونها سوالی میپرسه. در آیه دوازده مزمور 34 داوود میپرسه: کیستان شخصی که آرزومند حیات است و طول ایام را دوست میدارد تا نیکویی را ببیند؟ دیدن نیکویی یک مطلب کتاب مقدسی هست. این احساسی است که خدا در قلب همه ما در بد و تولد گذاشته. ما به اون احساس امید میگیم. امید اعتقادی هست که در این دنیا چیز نیکویی هست و اون برای شما پیش خواهد آمد. این فلسفه خوبی هست چون لازم همه باور کنند که چیز خوبی برایشان پیش خواهد آمد. سالانه هزاران نفر در اوج ناامیدی دست به خودکشی میزنند. وقتی که جامعه شناسان و روانشناسان این خودکشی ها رو بررسی می کنند و می چرا اونها این کار رو کردند، به این نتیجه می رسند که اونها به دلیل ناامیدی دست به خودکشی زدند. اونها این اعتقاد رو از دست دادند که چیز خوبی می براشون پیش بیاد این قمنگیزه که فکر کنیم هر ساله هزاران نفر امیدشون رو از دست می دند. اما آیا این یک معجزه نیست که میلیون ها نفر امید دارند؟ اگر در مورد زندگی و مشکلاتی که دارند آگاهی داشتید، احتمالا تعجب می کردید که چرا اونها فکر می کنند چیز خوبی برایشان پیش خواهد آمد. اما اونها ایمان دارند که چیز خوبی برایشان پیش خواهد آمد، چون امید دارند. پولس رسول به ما می گه در این زندگی بزرگترین چیزها سه چیز هستند: ایمان، امید و محبت. امید یکی از بزرگترین چیزهاست چون امید منتهی به ایمان میشه چنانکه گفته شده. ایمان امید به چیزهای نادیده هست. شما ایمان دارید که چیز خوبی وجود داره و این ایمان هست. پولوس میگه سومین چیز بزرگ در دنیا محبت هست. بر اساس تعالیم پولوس رسول امید بزرگ هست. چون امید منتهی به ایمان میشه. ایمان بزرگه چون شما رو به سمت خدا میبره. شما نمیتونید بدون ایمان به طرف خدا برید. ایمان وسیله ای هست که شما رو به طرف خدا میبره. اما محبت آگاپه بزرگتر از ایمان و امید است. چون وقتی شما محبت آگاپه رو تجربه می کنید، چیزی را تجربه نمی کنید که شما را به سوی خدا ببره. شما خود خدا رو تجربه می کنید چون ذات خدا محبت آگاپه است. ماهیت خدا محبت است. در مزمور سی داوود این فراریان و شکست خردگان رو با این سؤال به چالش میکشه. چند نفر از شما می خواهید زندگی کنید؟ بعد از اونها پرسیده چه مدت میخواهید زندگی کنید چند روز میخواهید زندگی کنید تا حالا ملاحظه کردید که کسی به این سوال جواب نمیده که چقدر میخواد زندگی کنه وقتی از کسی میپرسید که چقدر میخوای زندگی کنی هیچ کس نمیگه 20 سال و دو ماه و سه هفته و دو روز اونها هرگز اینو نمیگن اونا فقط میگن میخوان زندگی کنن مردم چرا میخوان زندگی کنن آیا به خاطر اینه که نیکویی ببینند به خاطر این نیست که در قلبشون معتقدند که چیزهای خوبی براشون اتفاق خواهد افتاد داوود در ادامه به اونها میگه بذارید راجب به نیکویی که دنبالش هستید به شما بگم بچشید و ببینید که خداوند نیکوست به این دلیلی که خداوند امید رو در دل شما گذاشته خدا میخواد که شما روزی بفهمید او همان نیکویی هست که شما برون امید دارید همون نیکوییه که برای شما پیش خواهد اومد داوود در ادامه صحبتهاش صحبت‌هاش داستان شخصی خودش با خدا رو به اونها میگه. خلاصه و تفسیر چیزی که داوود گفته میتونه چون این چیزی باشه. گوش کنید این مرد مسکین فریاد براورد و خداوند او رو شنید. مرگ منو تهدید می‌کرد. احتمالاً او در مورد تجربه در مقابل شاه فلسطینیان صحبت میکنه. خداوند مرا از تمامی ترس ها نجات داد. داوود داره شهادت تجربیات شخصی خودش رو میده. داوود وقتی که میگه این مرد مسکین فریاد برآورد و خداوند رو شنید و از تمامی مشکلاتش نجات داد داره از تجربیات شخصی خودش حرف میزنه. بعد او میگه حالا شما هم بچشید و ببینید که خدا نیکوست. من فهمیدم که خداوند امید رو در دل من گذاشته چون میخواد من ایمان داشته باشم که او روزی برکاتی برای من فراهم خواهد کرد که برای تمامی کسانی میاره که حقیقتا به او اعتماد میکنند خدا برای چیزهایی که من امید دارم نیکو است شما رو به چالش وامی دارم چیزی رو که من یاد گرفتم شما هم یاد بگیرید او میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکو است خوشا حال شخصی که به او توکل می دارد ای مقدسان خداوند از او بترسید زیرا که ترسندگان او را هیچ کمی نیست بعد داوود اونها رو به چالشی بزرگ میکشه که عهدی باشه بین او و مردانش و میگه خداوند رو همراه من گرامی بدارید و بیایید نام او رو با هم جلال بدیم این عهدی بود که اون شکست خوردگان رو تبدیل به مردان مقتدر داوود کرد در کتاب داوران و در های شریعت و در تمامی کتابهای تاریخ دیدیم که خدا لذت میبره از اینکه کارهای العاده رو توسط اشخاص معمولی انجام بده ما همون الگو رو در مزمور 34 می می‌بینیم مردان داوود در ابتدا مردان معمولی بودند که با خدای قادر ملاقات کردند این فراریان که از خورده در اثر موعظه داوود تبدیل به مردان مقتدری شدند ما این موضوع رو به کرره در کتاب مقدس می‌شنویم میشنویم که جد میگه تایفه من ضعیف ترین تایفه مناسی هستند و من در خانه پدرم کوچکترین هستم خدا در دعوت این هیچ کس های کوچک تخصص داره اگه بتونه اونها رو وادار کنه که به او اعتماد کنند و بگن خدا یا این من نیستم بلکه تو هستی این کاری نیست که من بتونم کاریه که تو میتونی این چیزی نیست که من میخوام چیزی که تو میخوای، و بعد وقتی خدا اونها رو به کار میگیره اونها میدونن و میگن من این کار رو نکردم خدا انجام داد این عهدیه که داوود با این مردان مقتدر میبنده و رمزی رو که خودش کشف کرده بود به اونها هم میده ما دیگرها میگن من به چیزی که میتونم هدایت میکنم شما میتونید این کار رو بکنید باید این کار رو بکنید میتونید این کار رو بکنید اما کتاب مقدس اینو نمیگه کتاب مقدس میگه خدا میتونه این رو انجام بده خدا قدرت داره و خدا با شماست کارهای ای که اون مردان به همراه داوود انجام دادند، نام خدا رو بلند کرد. این چالش داوود بود. ما هیچ کس نیستیم، شکست خورده ایم، فراری هستیم، اما ایمان داریم که نیکویی رو خواهیم یافت. نیکویی که به اون ایمان داریم خود خداوند هست. اگر ما به او اعتماد کنیم و از او برکت بگیریم، میتونیم با همدیگر خداوند رو جلال بدیم. وقتی داوود و مردانش کارهای بزرگی انجام دادن، مردم به ضعف اونها نگاه کردند و فهمیدند که قدرت اونها از طرف خداست و بدون گونه نام خدا رو جلال دادن. مزمور 34 حقیقتا مزمور بزرگیه که به حال و هوای احساسی شکست اشاره میکنه. آیا تا حالا شکست خوردید؟ خیلی ها نمیدونن شکست چیه. به هر حال دیر یا زود هر کسی شکست خواهد خورد. میتونه شکست مالی باشه یا شکست شغلی، شکست در ازدواج، شکست به عنوان والدین، شکست روحانی و یا شکست اخلاقی. راه های زیادی برای شکست وجود داره. تا حالا یک شخص شکست خورده رو دیدید که در یکی از این موارد شکست خورده باشه؟ وقتی کسی شکست میخوره، مزمور سی و چهار به اون نشون میده که با شکستش چه برخوردی بکنه؟ آیا تا کنون شکست شما به حدی بوده که امیدتون رو از دست بدید؟ شکست به ندرت اونقدر جدی هست. خیلی کم اتفاق میفته که شکست به حدی باشه که امیدمون را از دست بدیم. اگر هنوز امید دارید، معنیش اینه که هنوز هم به نیکویی ایمان دارید. پیغام داوود به شما اینه. بچشید و ببینید که خداوند است. در مضمور صد وقتی که به حضور خدا میرید، میدونید که خدا نیکو است. خدا اون خدای نیکویه که شما بهش امیدوارید. پس به او اعتماد کنید، از او برکت بگیرید و بعد نام او رو جلال بدید و بذارید همه بدونند که خدا حتی میتونه از شکست خردگان استفاده کنه. وقتی خدا از شکست خردگان استفاده میکنه، نام خداوند جلال پیدا میکنه. حالا میخوام یک مزمور نبوتی رو بررسی کنیم. داوود در کتاب مقدس به عنوان یک نبی مطرح شده. چون در روز پنتیکاست، متن معزه پتروس از مزمور 16 بود. در مزمور 16 داوود میگه خطههای من به جایهای خوش افتاد میراث بهی به من رسیده است خداوند را که مرا نصیحت نمود متبارک میخوانم شبانگاه نیز قلبم مرا تنبیه میکند خداوند را همیشه پیش روی خود میدارم چون که به دست راست من است جنبش نخواهم خورد از این رو دلم شادی میکند و جلالم به وجد میآید جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهد شد تا اینجا این فقط یک مزمور زیبا بود اما از اینجا به بعد تبدیل به یک مزمور نبوتی میشه اون که داوود میگه زیرا جانم را در عالم اموات ترک نخواهی کرد و قدوس خود را نخواهی گذاشت که فساد را ببیند در این مرحله داوود در مورد خودش صحبت نمیکنه. کنه پتروس در روز پنتیکاس به این مسئله اشاره کرده وقتی پتروس از مزمور 16 موعظه کرد و گفت گوش کنید داوود مرد و مقبرهش امروز وجود داره اگه امروزه به سرزمین مقدس برید هنوز هم میتونید مقبره داوود رو ببینید داوود مرد و بدنش فساد رو دید پطرس میگه پس داوود در مورد خودش صحبت نمیکرد او در مورد عیسی مسیح صحبت میکرد وقتی عیسی مسیح از مردگان قیام کرد، این نبوت تحقق یافت مضمور دو نیز یک مضمور نبوتیه در مزمور دو میخونیم چرا امتها شورش نمودهاند و تواف در باطل تفکر میکند پادشاهان زمین بر و سروران با هم مشورت نموده به ضد خداوند و به ضد مسیح او که بندهای ایشان را بکسلیم و زنجیرهای ایشان را از خود بیاندازیم. او که بر آسمانها نشسته است میخندد خداوند بر ایشان استهزا می کند. بعد او میگه روزی خداوند بر این قوم کافر خواهد آمد که در نظر او بی مصرف او آمدن عیسی مسیح را اینطور شهر میده. ایشان را به عصای آهنین خواهی شکست مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی نمود اگر با کارهای مسیح و با این آیه مزمور آشنا باشید که میگه مثل کوزه کوزگر آنها را خرد خواهی نمود از خودتون میپرسید مفهوم این سرود چیه؟ جوابش نبوت مسیحایی هست وقتی عیسی در ظهور اول خود به این جهان آمد مردم ریش او رو کشیدن به او سیلی زدند. تاج خار بر سرش نهادند بر صورتش توف انداختن، تازیانش زدند و مسلوبش کردن. این آیه به ما میگه که دفعه بعد که مسیح میاد، این گونه نخواهد شد. تمامی کافران و ملتهای مشرک روی زمین رو در نظر بگیرید، بعد یک ظرف زیبایی رو مجسم کنید و حالا یک عصای آهنین رو تصور کنید که میاد و اون ظرف رو خرد میکنه. به گفته مزمور دو این همون کاریه که مسیح با ملت های روی زمین خواهد کرد. او بار اول که به این دنیا آمد این کار رو نکرد. رسولان مرتب از عیسی میپرسیدند کی رومیان رو بر کنار خواهی کرد؟ کی به تمام این حماقت خاتمه خواهی داد. رسولان نمیتونستند بفهمند چرا عیسی رومیان رو به هزاران تکه خرد نمیکنه چون رسولان مزمور دو رو میدونستند. چیزی که رسولان نمیتونستند در این بود که عیسی دوباره به دنیا خواهد آمد. در ظهور اولش او ناجی بود که رنج کشید. در ظهور دومش او شاه شاهان و رب الارباب خواهد بود. این حقیقت بر مبنای نبوتهایی مثل نبوت مزمور دو بیان شده. مزمور نبوتی مورد علاقه من مزمور شش هست این مزمور چیزی رو پیش بینی کرده که پتروس به اون روز خداوند میگه. بسیاری از انبیا به اون روز روز خداوند گفتند. اگر چیزهای آینده رو در کتاب مقدس مطالعه کنید، خواهید فهمید که چیزی که بهش آمدن ثانویه عیسی مسیح میگیم، سلسله ای هست که دوره طولانی از زمان رو دربر میگیره. اختلاف نظر زیادی بین محققان در مورد وقایه نگاری این رویدادها هست. اما آمدن ثانویه مسیح سلسله ای هست که در اون زمان اتفاق خواهد افتاد. یکی از اون وقایه روز خداوند نام گرفته. میگه که وقتی روز خداوند برسد، هر چیز مادی از بین خواهد رفت. تمامی موجودات مادی با حرارت سوزانی زوب خواهند شد. روزی از یک دانشمند فیزیک هستهی پرسیدم که آیا میتونی حرارت ناشی از یک انفجار هستهی رو برای من طوری توضیح بدی که بتونم حسش کنم؟ او گفت برای مثال میتونی یک دیوار بتونی به طول 50 متر و به ارتفاع چهل متر و ضخامت چهل متر رو در نظر بگیری. اگر چنین انفجاری در نزدیکی این دیوار اتفاق بیفته، تمامی این دیوار بتنی در یک لحظه بخار میشه و به هوا میره. به او گفتم آیا میتونی تصور کنی که دو هزار سال قبل یک مرد ماهیگیر بی سواد بتونه چنین حرارتی رو توصیف و پیش بینی کرده باشه؟ بعد به او متنی رو که در دوم پتروس باب سه هست نشون دادم اونجایی که پتروس پیشگویی کرده که تمامی اجسام با حرارتی سوزان ذوب خواهد شد. بعد به او گفتم که پتروس تنها نویسنده کتاب مقدس نیست که چنین رویدادی رو پیشگویی کرده بلکه انبیایی که هزاران سال قبل از پتروس زندگی نبوت های مشابهی کردند نویسنده مزمور 46 یکی از اون انبیا بود وقتی که کتاب انبیا رو بررسی بکنیم خواهیم دید که وقتی انبیای یهودی عهد قدیم چیزی رو می گفتند که اتفاق خواهد افتاد اون رو در زمان گذشته بیان می‌کردند تا اون جایی که به اونها مربوط می‌شد اون واقعه پیشاپیش روی داده بود. وقتی خدا میگه واقعی اتفاق خواهد افتاد، انبیا این واقعه رو طوری اظهار می کنند که گویی اون اتفاق افتاده. به مازی بعید نبوتی در مزمور چلوشش گوش کنید، خدا ملجع و قوت ماست و مددکاری که در تنگیها فوراً یافت می شود، پس نخواهیم ترسید اگرچه جهان مبدل گردد و کوهها در قعر دریا به لرزه شاید. اگرچه آبهایش آشوب کنند و به جوش آیند و کوه‌ها از سرکشی آن متزلزل گردند. صلاح سلاح به معنی اینه که بیستید و در مورد اون با احترام تفکر کنید. نحریست که شعبه شهر خدا را فرحناک می سازد و مسکن قدوس حضرت اعلا را. خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد. خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح. نعره زدند و مملکت‌ها متحرک گردیدند او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما صلاح بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی‌ها در جهان پیدا نمود او جنگ‌ها را تا اقصای جهان تسکین می‌دهد کمان را می‌شکند و نیزه را قطع می‌کند و عرابه ها را به آتش میسوزاند. سوزاند. بازیستید و بدانید که من خدا هستم در میان امت ها متعال و در جهان متعال خواهم شد. یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. صلاح کتاب مقدس نمیگه که زمین تا ابد باقی خواهد ماند بلکه کاملا خلاف این رو میگه. دی مودی گفته براساس اساس آیاتی مثل مزمور چلشش دنیا کشتی در حال غرق شدن هست. وظیفه ما نجات دادن کشتی و یا رنگ کردن اون نیست. وظیفه ما اینه که تا اون جایی که میتونیم انسانهای بیشتری را از این کشتی که در حال غرق شدنه قبل از اینکه کاملا غرق بشه نجات بدیم. چون که ای برادران اون غرق خواهد شد. ما میتونیم مزمور نبوتی شش رو اینگونه تفسیر کنیم و به کار بگیریم. کتاب مقدس مکرراً به ما میگه که روز خداوند خواهد اومد روز خداوند طوفان بزرگی رو به تصویر میکشه که در اون روز همه چیز خواهد سوخت. 20 سال پیش دوست واعظی داشتم که دائما میگفت همه چیز خواهد سوخت. وقتی شما ماشینی یا دوچرخه‌ای نو بخرید و یا هر دارایی جدیدی، وقتی که او به وسایل تازه شما نگاه میکنه میگه همه اینها خواهد سوخت. او خواهد آمد. و به کلیسا یه جدید نگاه خواهد کرد و خواهد گفت همه اینها خواهند سوخت گاهی ما به او میگیم ما این رو میدونیم اما الان نمیخوایم اینو بشنویم به نظر میرسه او همش به این فکر میکنه آیا کتاب مقدس میگه تمامی اینها خواهد سوخت خلاصه و تفسیر دوم پتروس 3 اینه که پتروس میگه همه اینها خواهد سوخت پتروس بعد ما رو به این چالش وا می داره پس با توجه به اینکه همه چیز خواهد سوخت ما چه جور انسان‌هایی باید باشیم؟ آیا باید تماماً غرق در مادیات باشیم یا اینکه انسان درونیمون رو پرورش بدیم؟ انسان درونی ابدی و فسادناپذیر و اون چیزهای روحانی که جنبش نمیخورند و نابود نمیشن. نویسنده مزمور چلوشش شروع میکنه به نبوت کردن، مانند های پتروس که یک طوفان بزرگ نابود کننده در روی زمین همه چیز رو از بین خواهد برد. بر اساس مزمور 46 این خبر بدیه اما خبر خوب اینه که یهو و سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما این مزمورنویس از استعاره زیبایی برای دادن این خبر خوش به ما استفاده میکنه نهری است که شعبه‌هایش شهر خدا را فرحناک میسازد و مسکن قدوس حضرت اعلی را خدا در وسط اوست پس جنبش نخواهد خورد خدا او را اعانت خواهد کرد در طلوع صبح بندگردان این مزمور متناوبن به ما میگه یهو و سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما معنی این رودخانه چیه؟ بسیاری بر این باورند که این رودخانه قوم خدا در عهد قدیم و کلیساهای امروزی هستند رودخانه همان قوم خداست که در این دنیا جریان داره و به شهر خدا منتهی میشه که همون آسمان در جایهای ابدی هست بنابراین قوم خدا دائمی و بخشی از ابدیت هستند به این دلیل که ما میتونیم ارزش قوم خدا رو بدونیم و خودمون رو وقف بنای کلیسای حقیقی عیسی مسیح بکنیم عیسی گفته من کلیسایم رو بنا خواهم کرد و های جهنم بر اون استیلا نخواهد یافت کلیسایی که توسط عیسی مسیح ساخته میشه چیه در مزمور 46 کلیسا به وسیله اون رودخانه به تصویر کشیده شده که در این دنیا جریان داره و به حضور خدای ابدی منتهی میشه. وقتی که به میانه مزمور میرسیم ما شرحی از روز خداوند رو در زمان مازی بعید نبوتی میبینیم. چنان که گویی پیشا پیش اتفاق افتاده. ما در زمان مازی بعید نبوتی میخونیم امتها نعره زدند و ها متحرک گردیدند. او آواز خود را داد پس جهان گداخته گردید. در میانه اون خبر بد، ما میخونیم یهو و سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما. یادتون باشه که حتی وقتی همه چیز میسوزه خدا قلعه بلند ماست. باز هم دوباره به بررسی خسارت این طوفان آینده میپردازیم. چنان که گویی پیشا پیش اتفاق افتاده، ما میشنویم که مزمور نویس میگه بیایید کارهای خداوند را نظاره کنید که چه خرابی ها در جهان پیدا نمود. در میانه این مزمور نبوتی وحشتناک شما یکی از بزرگترین آیات مزامی رو میبینید آیه ده میگه بازیستید و بدانید که من خدا هستم در میان قومها متعال و در جهان متعال هستم یهوه سبایوت با ماست و خدای یعقوب قلعه بلند ما بعد میگه سلاح سکوت کنید و با احترام به این فکر کنید در میانه این مزمور اونجا که در مورد روز بزرگ وحشتناک خداوند گفته شده که در آن روز همه چیز خواهد سوخت به ما نصیحتی روحانی داده شده. بازیستید و بدانید من خدا هستم. آیا تا کنون اونقدر آرام بودید که حضور الهی خدا را احساس کنی؟ بسیاری از ما اغلب اونقدر مشغول هستیم که نمیستیم تا حضور الهی خدا را احساس کنیم. اما مزمور چلشش به ما این نصیحت رو میکنه و میگه بازیستید و بدانید که من خدا هستم. این آیه شامل بزرگترین وعده کتاب مقدس هست. من هستم در کتاب عبرانیان خدا میگه اگر میخواهید به حضور من بیایید باید باور کنید که من هستم و کسانی رو که با جدیت به دنبال من باشند، پاداش خواهم داد آیا واقعا ایمان دارید که خدا هست آیا تجربه کردید که خدا هست آیا تا حالا حضور الهی خدا رو تجربه کردید برای تفسیر چیزی که نویس در اینجا از ما میخواد باید بگیم که او ما رو به چنین چالشی میکشه و میگه گوش کنید، روزی همه چیز خواهند سوخت، روزی کوها همه به دریا خواهند رفت، تمامی دریا خواهد جوشید و زمین لرزه ها خواهد بود و تمامی کوها و دریاها از بین خواهند رفت. وقتی این اتفاق بیفته، تنها چیزی که مهمه اینه، آیا خدا رو میشناسی؟ آیا قادر هستی که بگی خداوند قلعه بلند و قوت منه؟ و در تمامی سختی های من برای کمک به من حضور داره؟ آقلانه ترین کاری که میشه برای آماده شدن برای روز خداوند کرد اینه که همین الان بازیستیم و بدونیم که او خداست. همین الان و روزی یک بار در تمام طول عمرتون. این پیشنهاد مرتبن خواندن آیه ده پیشنهاد بسیار خوبیه که میگه آرام باشید و از تجربیاتتون بدونید که خدا هست و اراده او رو بدونید. چیزهای کمی توی این دنیا هستند که ابدی و پایدار هستند. به این دلیل که ما این کتاب‌های شعر رو داریم و یادتونه که گفتیم مخاطب کتاب‌های شعر انسان درونی هست. قبلا گفتیم که وجود ما تشکیل شده از انسان درونی و انسان بیرونی. انسان بیرونی رنج می‌کشه و روزی مطلقاً از بین خواهد رفت. در اول قرنتیان باب پانزده می‌بینیم که پولس رسول سرنوشت نهایی انسان بیرونی رو بیان می‌کنه. پولس به ما می گه که وقتی انسان بیرونی می‌میره شما او را دف نمی‌کنید بلکه او رو مانند بذر میکارید. شما او رو در امید و اعتقاد به قیام میکارید. بنا به گفته پولس روزی خداوند اون انسان بیرونی اون جسم رو از مردگان بلند میکنه. پولس به ما نمایی از انسان بیرونی و انسان درونی میده پولس در اون باب به ما میگه انسان بیرونی مانند خیمه‌ای که شما درون اون زندگی می‌کنید و مانند بذری که روزی کاشته خواهد شد انسان درونی بخشی از شما هست که ابدیه و اگر شما یک ایماندار هستید روزی او با خدا تا ابد زندگی خواهد کرد براساس این کتاب های شعر و به گفته پولس دو واقعیت بزرگ در زندگی خدا و انسان درونی هستند. مزمور چلشش همینطور شرحی از پرستش رو به ما میده بر اساس این مزمور پرستش یک همسانی بین انسان درونی و حضور الهی خداست بازیستید و بدانید و یا بشناسید کلمه شناختن در زبان یونانی و عبری کلمه‌ایه که صمیمیت رو نشون میده مثلا در کتاب پیدایش ما میخونیم که آدم زنش رو شناخت و او حامله شد کلمه شناختن در اون متن به معنی شناختن صمیمانه به وسیله تجربه هست مزمور 46 به ما نصیحت میکنه که بازیستیم و خدا رو توسط یک تجربه صمیمانه بشناسیم ما باید بدونیم که خدا هست و بدونیم که اراده او چی هست؟ اراده خدا بر حسب مزمور چلشش چیه؟ خدا میخواد که تمامی نسل در تمامی سرزمینها او رو بشناسند و اراده او رو بدونند. اراده او چیه؟ در هر دو مزمور دو و شش اراده خدا متعال شدن در میان قومها و در جهان هست. آیا شما ایستادید که خدا رو بشناسید؟ آیا اونقدر استادید که اراده خدا رو بدونید؟ کار خدا در دوره من و شما اینه خدا کلیسای خودش رو بنا میکنه بر اساس صحبت های عیسی در کوه زیتون در متا 24 و 25 کلام خدا باید در تمامی دنیا موعظه بشه و شاهدی برای همه ملت باشه و بعد از اون دنیا خاتمه خواهد یافت روزی جایی خادمی کلام خدا رو در جای دور افتاده موعظه خواهد کرد و بعد از اون خداوند خواهد گفت حالا میتونم کار رو تموم کنم چون انجیل در سراسر دنیا برای همه ملت ها شده. این چیزیه که عیسی در صحبت نبوتی خودش به ما یاد داده. در میانه این واقعیت که همه چیز خواهد سوخت، مزمور نویس میگه بازیستید و بدانید که من خدا هستم. بازیستید و بدانید که اراده خدا چیه و بعد او رو در حضور او پرستش کنید و خودتون رو وقف کلام او کنید. این تحقق اراده او هست بازیستید و بدانید که من خدا هستم و در بین کافران متعال خواهم بود و در تمام جهان متعال خواهم بود عزیزان در طی چند درس گذشته بسیاری از مزامیر رو با هم بررسی کردیم با این حال این فقط یک بررسی اجمالی از کتاب مزامیر بوده 150 مزمور در کتاب مزامیر هست اما ما فقط چند تایی رو تونستیم بررسی کنیم اما امیدواریم این مطالعات به شما کمک بکنه که مزامیر رو بهتر درک بکنید و قدر اون رو بهتر بدونین و امیدواریم این کتاب به شما در پرستش ها و دعاهاتون هم مسیر روشنی بده دوستان تا برنامه بعد شما را به خدا میسپاریم و تشویقتون می‌کنیم که یکی از مزامیر مورد علاقه خودتون رو حفظ کنید برکت خدا و آرام و براتون آرزومندیم